أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين مقدمي سوري يوسف هاس از که الله بر محمد صلی عليه علیه و سلم نازل کرده از بالای عرش وحک کرده بر محمد صلی الله علیه وسلم تا اینکه این که این قصه را برای ما بازگو بکنه چه ای هست قصه یوسف علیه السلام و, و چه درسای درش هست اینجا الله برای ما ایاد بکنه اولین مطلبی که در بحث سوره یوسف باید گفته بشه بحث سؤالی هست که برای ما مطرح میشه ما چگونه الله را دوست داشته باشیم بحث دوست داشتن این دوست داشتن یک کلید یک کلید واژه‌ای هست که در این سوره بین پدر و پسر یعقوب علیه السلام یوسف را دوست داره چرا یوسف را دوست داره به خاطر عبادتش به خاطر تقوای یوسف علی السلام نزدیکیش به الله و اون خواب هایی که یوسف می دلالت بر صالح بودن یوسف داشت. خب این محبت بین پدر و پسره چرا یوسف محبوب شد به خاطر عبادت و پرستشش وقتی که مخلوقی اون پیغمبر که الله او را فرستاده برای نقل وحی برای بازگو کردن وحی الهی وقتی که اون شخصی که با الله در ارتباط این بنده را دوست می‌داره این دوست داشتنش بدون دلیل نبوده این دوست داشتنش نشانه این را میده که الله این محبت را در دل یعقوب گذاشته نفت به فرزندش یوسف و این محبت هم اینطوری نبوده یک انتخابی بوده از سوی الله همونطور که یعقوب به عنوان یک پیامبر انتخاب شده بود از فرزندان اسحاق و اسحاق از فرزندان ابراهیم یوسف هم یک فرزند انتخاب شده از فرزندان یعقوب بود علیه السلام این فرزند محبوب میشه نزد پدرش الله جل شانه انو ان بندگانی که دوست داشته باشد اونها را بالا میبره تو که الله در میگه یرفع الله الذين امنوا منکم والذین اوتوا العلم دراجات الله بالا میبره اونها که اهل علم و ایمان آوردن و ایمان میارن با ایمان انسان بالا میره چطور ما این ایمان را کسب بکنیم که محبوب درگاه الهی بشیم یکی از اون مطالب اینجا در سوره یوسف هست یوسف با اون صبرش با اون حلمش با اون بردباری با اون بخششش نمونه‌های مختلفی از عبودیت و از نزدیکی یوسف به الله را در این سوره خواهیم داشت. که نشون میده که این یوسف همینطوری عزیز نشده، همینطوری محبوب درگاه الهی نشده. یک قسمتش بحث من و شماست که ما چگونه محبوب درگاه الهی بشی و یک قسمت دیگر چطور ما الله را محبوب خودمون قرار بدیم به طوری که دست از محرمات بکشیم و اون اوامرش رو اجرا بکنیم چطور میتونیم ما اون بنده ای همچون یوسف باشیم به چه وسیله ای با نگاه به ادله و براهینی که الله گذاشته بر وحدانیتش یکی از راهها علم سوره یوسف الله برای ما براهین و ادله ای گذاشته که نشانه بر یا دلیلی بر وحدانیت و یگانگیش هست است از جمله ادله هایی که در این هست بحث خوابه خواب یک دلیل ورهانیه یک مدرکیه یک حجتیه بر یگانگی الله چطور؟ شخصی در خواب می‌بینه که یک رخدادی قراره که رخ بده یک حادثه قراره که رخ بده بعد از یک ماه بعد از یک هفته همون چیز رخ میده یا یک رمزی در خوابش میاد قصه خواب فرعون خواب دیدم که هفت گاو گرسنه و هفت گاو لاغر اومدن گاو چاغچله رو خوردن و چنان شد و چنان شد بعد یوسف میاد تعبیر میکنه که بعد هفت سال پرخیر و برکت میشه و هفت سال خوشتالی میشه خب یوسف راست کجا چرا اون فرعونی که ایمان به الله نداشت دنبال تعبیر خوابشه چرا ترسید بود چون میدونست مشرکین هم این اعتقاد داشتن که خواب یک علم الهی یک علم سابقیه که الهام میشه بر شخص و اون چیز رو خواهد داد فرعون اعتقاد داشت بر این که اون خوابش به تحقیق میپیونده پس خواب دلیل و مدرکی بر یگانگی الله اون فردی که الهام میکنه به بشر در خوابش این یک برهان و یک دلیلی بر وحدانیت از جمله قدلهوا براهینی که در این سوره هست بر وحدانیت الله بحث علم غیبه رسول الله صلی الله علیه و سلم یوسف زندگی کرده و نه از کتاب‌های آسمانی از تورات از انجیل خونده که بدونه از این قصه ها این قصه ها نقل میشد ولی دقیق نبود پراکنده بود الله در یک سوره در قرآن کل قصه یوسف با بهترین وجه برای ما نقل میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم از از کجا دونست از علم غیب الله او را مطلع ساخت نمیدونست رسول الله صلی اللہ علی وآلہ وسلم چنانچه در این سوره بهش اشاره شده و همچنین اون چیزهایی که رخ خواهد داد خیلی از چیزها هست در قرآن اخبارش به ما گفته شده غلبت روم بحث مغلوب شدن روم توسط فرس و برعکسش یا خیلی از داستان های دیگه تبتید ابی به اموته این که ابو از همسرش با شرک و کفر از دنیا خواهند رفت. از علم غیبه خیلی از چیزها هست که رسوده صلی اللہ علیه و از علم غیب ما خبردن از آنچه چه رخ میدهد این اینجا قصه یوسف اون چیزی که رخ داده اون چیزی که رخ میده هم این نشانه یگانگی الله و مطلع بودنش و عالم بودنش بر آفرینشش، الله عالمه عالم غیب و شهاده هست. اون چیزی که الان میشه و اون چیزی که شده و اون چیزی که میشه، وقت الله مطلع برش. این نشانه بر یک بودن در آفرینش آه. الله هست جل دشان هو. و اینکه تنها مستحق عبودیت و پرستش فقط اوست. او باید پرستیده بشه و او باید محبوب دلها بشه. همچنین از یگانگی الله که الله عدل و برایش در این سوره گذاشته، بحث قضا و قدر الهیه. اینکه الله جل دشان که یوسف علیه السلام زندان بشه یا فروخته بشه یا کشته بشه هدف این نبود این بنده ای که محبوب درگاه الهیه این سلسله مراحل طی شد برای عزتش برای مقامش برای اینکه اون صالح بودنش و محبوب بودن درگاه الهی بودنش اینکه محبوب درگاه الهیه برای برادرانش و برای بقیه بنی اسرائیل ثابت بشه اینکه یک کسی هست که پشتوانش بوده الله ولي الذين امنوا الله ولي المؤمنين انك الله ولي شنه نصرتشو میده در این سوره ما به نمایان و وضوح میبینیم خیلی واضحه آشکاره چرا یوسف الله اینجینی بهش عزت داد تا اینکه وزیر خزائن وزیر امور مالی فرعون بشه در بالاترین مقام وزارت یک کشور واقع بشه اونم شخصی که به عنوان یک برده فروخته میشه اینه که بنده خالص بودن یوسف صلب شد که الله اینچنین او را بالا ببره الله چیزی جزئی, جزئی نبوده عدل بابراهین زیادن بر یه الله فقط اینا ما من دارم اشاره وار دارم میگم اینها به انسان کمک میکنه که انسان الله را دوست داشته باشه وقتی که به این قصه ها خصوصا نگاه میکنه به این داستان ها نگاه میکنه اینها ادله ها هست الله بهمون بازگو میکنه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را. حرف اینجا الله یاد میکنه الف و لام و را سه تا حرف از حروف لغت عربی که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام نمیگم الف حرف لام حرف و میم حرف هر حر کدوم از این حروف برای خودش ده تا حسنه داره اگر خوندی تلاوت کردی چه معنایی داره کسی نمیدونه اومدن بعضیا بگن که نمیدونم اسم اعظم الله در اینه و فلانه و اومدن به هم دیگه وصلش کردن و قطعش کردن هیچ دلیلی بر اینها نیست اون چیزی که هست الله از باب تحدی و از مبارزه تلبی با مشرکین اومده این حروف رو یاد کرده که قرآن از این حروف تشکیل شده از این حروف قرآن جزئی نیست را و حامیم و عین سین قاف حروف قرآن اینه و این حروف شما با این کلمات با این حروف نمیتونید کلماتی بسازید همچون قرآن الله میخواد بگه این قرآن معجزه است با این حروف غیر از این نبوده حالا چرا این حروف انتخاب شده؟ الله اعلم کسی نتونسته به کنه معنای این قضیه پی ببره تلک آیاتو کتاب المبین این آیاتی که شما میخونید آیاتی از کتابی مبین و واضح. نین قرآن کلماتی کتابیه که مبین و واضح. یعنی آشکاره بیان شده به طوری که همه او را بفهمن کتابی نیست که درش گمنامی باشه درش یه چیزهایی باشه که ما نتونیم درکش بکنیم بفهمیم تلک آیات الكتاب المبین یعنی واضح و آشکار ان انزلله قرآن عربی لعلکم تعقلون ما این رو عربی نازل کردیم با لغت عربی عربی که واضحه لعلکم تعقلون تا اینکه شما تعقل بکنید بدونید درک بکنید برای درک من و شما قرآن برای درکه لعلكم تعقلون امام شافعی رحمه الله میگوید این آیات دلالت بر این داره که تعلم لغت عربی واجب بر هر شخص چون فهم قرآن با غیر لغت عربی ممکن نیست یعنی یک شخص فارسی، یک شخص ترکی، یک شخص نمیدونم، روسی نمیتونه با زبان روسی بیاد قرآن رو بفهمه باید لغت عربی را یاد بگیره تا بفهمه الله چی ازش خواسته بله الان ترجمه های قرآن هست اشتهاد کردن بعضی ترجمه کردن امام شافی رحمه الله میگه, میگه این لغت همچون پیامبری هست که برگزیده شده، رسول اساس از میانه کل امتها برگزیده شد و در امت عرب برگزیده شد. این انتخاب الهی، الله این لغت را انتخاب کرده. بر تمامی بشر میگه واجبه که لغت عربی را فرا بگیرن، یاد بگیرن تا بتونن قرآن را بفهمند لعلکم تعقلون، تا اینکه تعقل بکنن، کلام الهی را درک بکنن، بفهمند. چون با غیر لغت عربی کسی نمیتونه قرآن را درک بکنه، بفهمه. به خاطر همین میگه چه تعلیم لغت عربی بر هر فرد مؤمن مسلماني واجب نحن نقص عليك احسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافري ما هسين كبر تو محمد ان قصهارا باز اومي كن ان قصهارا دستانا حقيقية افصانه ليست واقعيته. يوسف بوده موسى بوده بعضیات میان میگن که نه اینا افسانه هست اینا داستانه نه اینا داستان های واقعی بله داستانه بله داستان های واقعی و حقیقی که رخ داده یوسفی بوده یعقوبی بوده اسحاقی بوده و ابراهیمی بوده ما هستیم الله میگه که وحی داریم میکنیم بر محمد صلی الله علیه و سلم محمد رسوله این اثبات نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم نه قصه ای هم این قصه ای که شما دارید میخونید بهترین قصه هاست احسن القصص بهترین بهترین به در سر عبرت هایی که در این سرهان هفته است در این قصه ها هفته است. بما اوحین ایلیک هذا القرآن از اون قرآنی که بر توی محمد وحب میکنیم و این کنت من قبله لمنالغافلین هرچنک تو از این قصه ها نمیدونی سی قبل از این یعنی قبل از اینکه که ما بازگو بکنیم نمیدونی سی یوسفی که یا موسی که این قصه ها برای عرب واضح نبود آشکار نبود نمیدونستن این قصه ها بله به اونایی که در مدینه بودن چون با یهود زندگی میکردن شاید بعضی از داستان ها رو شنیده بودن ولی در مکه نه ارتباطی با اهل کتاب نداشتن نمیدونستن این مسائل اینجا هست که الله این قصه رو انتخاب میکنه و وحی میکنه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بارک الله فیكم و صلی الله علی محمد و علی محمد